دوستان اکنون میخواییم درباره فرهنگ ایران و حقوق بشر صحبت کنیم. فرهنگ ایران حقوق بشر را از خود تراوید است. بنیاد فرهنگ ایران حقوق بشر بوده است. هزارها پیش از آن که کورش بیاید و جزی از این اندیشه را در منشورش شکل قانونی بد. می درباره این صحبت کنیم که در پرهنگ ایران زندگی انسان مقدس است و این مقدس بودن زندگی انسان سرچشمه همین حقوق بشر است یا حق انسان چونکه در عصر حق انسان است. حق انسان از خود انسان سرکش میگیرد، از خود جان اینها حقیست که از نهاد و فطرت و گوهر خود انسان میتراود و این یعنی حق از گوهر خود انسان میترابند این نکته بسیار باریک هست ما باید تقاوت بگذاریم بین حق و قانون حق یک ایده است مثلا آزادی داد این یک ایده است ولی قانون عبارتبندی این اند ایده در یک زمان در یک شرایط خاص است این قانون که عبارتبندی اون حق, حق هست خواه تابع شرایط زمان محدود است تنگ است این است که قانون برای اینی که در اجتماع کارا باشد خودش را با حقی که از آن تراویده است این همانی میدهد. ولی این این همانی دلیل این نیست که کاملا حق را میپوشاند کاملا همه رویه های حق را نشان میدهد دهد کنید منشور کوروش این یک قانون یک مصطوانی نیست که از اون حق از ایده حق در فرهنگ ایران عبارت بندی شده است اما این یک دیده، یک بخش بسیار تنگی از اون ایده هست بنابراین ما بایستی بدانیم که مسئله حقوق و بشر این نیست که کسی اه، اه، یک مشت مواد حقوق بشر را حفظ بکند خیلیها ها خیال میکنند که اگر این مواد منشور حقوق بشر را یک یکی حفظ بکنند به خاطر بسپارند یا در از جا بیندازند این سبب میشود که مردم میفهمند حقوق بشر چیست؟ این بزرگترین اشتباهیست که تقریبا همه روکان فکرهای ما می اینها نمیدانند که حقوق بشر حقوق فتریس از نهاد انسان تراویده شده است. کسی نمیتواند با عادت دادن با در مرور زمان با حفظ کردن با تکرار کردن این حق را به مردم تلقیم بکنند. این حق باید از مردم بترابند. اشتباه همه اینها این از که این آمدن این اسطلاح نهادین سازی را خیلی رفت قشنگیست. نهادی سازی حقوق بشر را مرتبن یا نهادین سازی سکولاری را یا این امثال اینها را تکرار میکنن که باید اینها را نهادین ساز. چجور نهادین بله راه و روشش این است که باید تکزیاد تکرار کرد یا تو رادیو تلویزیون گفت یا اینی که اینها را به مردم دستور از حفظ کنن البته اینها تمام نتیجه این است که ما در اثر ترجمه واجه ها به اصل مطلب پی میبریم نمیاندیشیم وقتی ترجمه میکنیم نمیاندیشیم که این حق انسان حقوق بشری که میگونن پتریست نهادیست یعنی احتیاج با نهادین سازی نداره. نهاد نهادن یک معنای ضایدن است یعنی اون چیزی که از مادر انسان بید. این است که یک, یک انسانی را یک حقیقتی را که سه هزار سال در اروپا پرورده شده است یک چند پیر مرد چند هزار ساله را که نمیشود در شکم کسی نهاد و این را اثر زایانی نهادینه نهاش کرد این اساسا غیر است و حقوق و بشر نمیگوید که من نهادینه میخوام بسازم اصلا این در خود نهادی سازنه نهادین سازی نهادی حقوق و بشر این ما یک تناقض فکری رو بیان میکنیم و اینکه که خیال میکنیم خیلی پیش رفته هستیم ولی خودمون را دوچار بزرگترین اشتباه میکنیم که ما میاییم اقرار میکنیم که پس حقوق و بشر پتری نیست نهادی نیست ما میخواهیم نهادی بسازیم این ساختن و فطری بودن گوهری بودن نهادی بودن با هم فرق دارد یکی میخواد جعل بکند یکی هست این چیزی که فطری هست ما چرا جعل بکنیم ما چرا بسازیم این بر ضد فکر اگر اینجور باشد که دیگران میان وارونش رو جعل میکنن یک فطرت جعلی به ما تحویل میدن اگر ما بتونیم یک چیزی را فطری بسازیم خب صد نفر میان فتر... فترت ها و طبیعت ها و حقوق ها بشر جعلی درست میکنن و در ما تدریق میکنن و این کار رو این تدریق فترت رو سختن... ساخ... ساختن و جعل کردن فترت در تاریخ, تاریخ خود را دارد خیلی به این کار پرداختن ای و آمدن هر کدام یک فترت خاصی از انسان ساختن یک نهاد خاصی از انسان در تئوریشون ساختن و سعی کردن در حکومتشان در دینشان اینها این فطرت را بگویم آه این فطرت شماست این نهاد شماست این گوهر شماست یعنی اون چیزی را که ساختن به جای فطرت جا بزانند فطرت ساختگی را نهادین ساخته را اون چیزایی که نهادین ساخته شده است با آن چیزایی که نهادی هست و گوهری هست جا بزنند این است که این ما درست همین جاست که مسئله و بشر گره میخورد با فرهنگ ایران چرا حق فطری نشان میدهد که این حق در یک فرهنگی هست نه تنها در ایران در فرهنگ‌های های دیگر هم بوده است. فقط اون چیزی را که از مردم ترابیده شده است باید به مردم نشان داد باید نشان داد که این آقا در تاریخ شما در فرهنگ شما ترابیده شده است. ما یکی به نهادین سازی نداریم ما دایست نشان بدهیم که در فرهنگ خود ما این اندیشه تراویده شده است از نهاد ملت ایران تراویده شده است آورده شده است جوشیده شده است زایده شده است این وقتی که زایده شده است تراویده شده است این فرهنگ حقیقی ما بوده است ولی از قدرتمندان تادشاهان، موبدان زرگشتی در هزارها ها این حق، این حق فطری سرکوبی شده است این است که اگر همت بکنیم و از فرهنگ خود ما این رگه های حقوق بشر را بیرون بیاریم از در اول کاملا با ناوری با اون روبرو میشیم میدیدیم ما صدها و ها از روبروی این از اندیشه گذاشتیم و متوجه نشدیم که این این همین حقوق بشر است این اندیشه فطری بودن فطری بودن حق آزادی فطری بودن اصالت خرد انسان در سامان دادن حکومت در رهبری کردن حکومت و در تأسیس قانون گفتیم قانون یک عبارت بندی کردن. حق در دوره‌های مختلف در شرایط مختلف اینها در فرهنگ ایران یکی از مهمترین جلوه‌های های فرهنگ ایران است و اینها به انکان اینی که از وجود انسان جدا هستند شناخته شده است. اصلا حق بشر حقوق انسان جدا است شما نمی توانید این رو بکنید وقتی جدا ناپذیر است که نمی شود فقط بایستی نشان داد که چطور پوچیده شده است چطور سرکوبی شده است وقتی که ما انکار میکنیم در فرهنگ ایران اینها نیست ما انکار میکنیم حقوق بشر رو که چیز فطریست ما با این اندیشه که در فرهنگ ایران هیچ نیست، ما حق انسان رو با اینی که انسان اصل تراوش قانون و حقوق هست نابود میکنیم یعنی ما با نادیده گرفتن فرهنگ خودمون حقوق بشر رو پایمال میکنیم این مودرنیست ها پوت ها که با دیده تحقیر به فرهنگ ایران نگاه کن اینا فراموش میکنن که با این کار دارن حقوق بشر رو پایمال میکنن نهره میکشن از حقوق بشر و خودشون حقوق بشر رو پایمال میکنن چرا؟ چون معتقد نیستن که در انسان فطریس، در انسان گوهریس. در اروپا اون چرا ما به نام حقوق انسان یا حقوق بشر می شناسیم. تفکراتی است که در درازای چند هزار سال در حقوق فطری یا طبیعی عبارت بندی شده. ناترال رایت، ناتور رشت اینها حقوق هستند که از طبیعت و فطرت انسان زایده شدن به جدانا شدنی از گوهر وجود انسان یعنی انحیات به نهادی نسازی نیست. احتیاج به انگیختن این ها احتیاجی به این هست که در فرهنگ این رو بیابیم در فرهنگ ایران و حد این هست بدون این حقوق انسان اصلا انسان نیست وقتی که شما میگید که ما میخوایم نهادینه بسازیم پس معتقدید که انسان در اول انسان نیست ما میخوام با نهادینه ساختن انسانش بکنیم این معناش این هست. ببینید چه در ترجمه از چه باری که منطقی اینها میگوریزن و درست بر ضد رفتار میکنن که میخواهند البته در همه پهنای جهان قدرتهای دینی و سیاسی هزارها بر ضد این حق فطری انسان جنگیدهاند تا این حقوق را تحریف کنند نسازند اصلا ادیان ابراهیمی بر این پایه ساخته شدهاند طبیعت و فطرت را در فرهنگ ایران خوب یک مقدار آشنا بشیم طبیعت و فترت رو چون که ما طبیعت یا فترت در عربی میگیم البته فراموش شود که همه این همه باجه فترت فتره فتردن یک باجه فارسی که این رو البته در نوابط خودش بخش یا همون قدس فکر نشد که این قدس کلمه عربیس مقدس بودن جان قدس قدس قنات باشه سرچشمه آب بود. این یک واژه پارسی است و اساساً در شاهنامه می‌بینید به روحانیون کاطوجیان می‌گویند. یعنی کاطوجیان یعنی جای قنات، یعنی جایی که آب ازش درچشمی شود و اساساً فرهنگ ایران انسان رو کاریز می‌داند. یعنی سرچشمه جان و و آب چون که آب این همانی با سیمرغ مقدس بود. حالا این من این واجه ها را میشمم که دقیقا به ما در پرهنگمون متوجه این نکته بشیم که این بحث در ایران هم در پرهنگ ایران هم شده است چون که ما اغلب این همانی این واجه ها رو نمیدانیم یکی گوهری گوهریک یعنی طبیعی و فطری یکی چهری چیترا چیتری این یعنی چه ما امروز چهره رو به منای صورت و روی و اینها به کار میبریم ولی اساساً چیتر، چیتره به معنای ذات است چون که ایرانی عقیده داشت که اون چه در ذات است اون چه در گوهر و طبیعت است پیدایش می‌آورد این بود که می‌گفتن چهره نماد گوهر بونه یکی همون کلمه نهادی نهاد نهادن یعنی زاییدن بود یکی چونی چونی هم معنای فطری دارد طبیعی دارد یکی بونی بونی که این, ما این شده از بون داده یعنی پیدایش یافته از بون یا این ترمه تبدیل شده از بونیادی یا بون, بون, بون داده این ببینید خیلی مهم است چون که همین واجه در پرنگ ایران به استوره هیچه استوره نمیگوید میگن بوندهش یعنی چه یعنی پیدایش از بون پیدایش از فطرست پیدایش یعنی چیزهای بحث میخوان بکنن از چیزهای گوهری از چیزهای پنتری هم مادری مادری ام میبینیم مثلا در, در پهلوی ماتک ماتک چند آما اساس کلمه مادری مادر ساخته شده هست. یک معناش گوهر است ماتک یک معناش عنصر اولیه و ماده اولیه است هر چیزی رو ماتک بود یکی ماتک به معنای اساسی و اصلی ماتکور به معنای اصلی اساسی برگزیده معتمد قسمت اصلی یک درخ، درخت تنه درخت است ببینید تمام اینها اینها با این واجاها اندازه‌ای تو آشنا شدیم بهتر می‌بینیم که این محبه مبحث در فرهنگ ایران هست فقط ما کلمه گوهر و نهاد و چهره و اینها را بون را اصلا نمی‌دونیم که بون واج مربوط فطرت است درست هست؟ پس بنابراین این یک آشنایی با این اصطلاحات لازم است این خواه ناخواه چه این تراوش و جوشش از اصل انسان، از بن انسان وقتی که آب از کاریزک است میآید پاک است نا آلوده است نا مخلوط است این طبعا پاک و مقدس هست. از این رو دیده می شود که خود همین واژه پاک در حزوارش داکیاس داک یعنی مادر داکیا یعنی مادر یعنی چی خود معنی پاک یعنی چی که پترس چیزی که طبیعی است حالا حالا این ببینید این در فرهنگ ایران هم قانون هم داد که ادارت باشه هم حق هر چه در اصطلاح داد هست دا داد داتا یعنی جو یعنی زایده می داتا این بعدش میگفتن آفریده پدیدار شده تجلی برا ولی اصل یعنی ر پس ببینید اصاساً قانون و عدل و حق را چیز گوهری میدانست در همین واجه باقی مونده است. این پدیده یعنی قانون و حق و ادالت نخستین تراوش از گوهر انسان و جامعه همراه این مفهوم پاکی قدس هست. چون که گفتیم این درست از وقتی که زاده هست یعنی پاک است این یعنی هرچی از انسان از بونه انسان داده میشود، پاک. پاکست. پس هر پدیدهی که نخستین تراوش از گوهر انسان و گوهر انسانها در جامعه باشد پاک و مقدس این بدان معناست که اون چه یک راست از گوهر چهره یا بونه انسان میجوشد و و می اصالت دارد. از خود انسان دوست. این کار اندیشه گفتار اسالت انسان را نشون. در فرهنگ ایران این واژه‌ای که امروزه به نام به، و هو، بهمن، هومن، هو، و هو، به، به اینها ما امروزه بیشتر به معنای اخلاقی به کار می‌بریم، به معنای اصالت. به و بهی معنای اصالت اصلا خود کلمه وهومن که مینوی مینوز یعنی از تخم درون تخمه این واژه بهی رو ما بحث قائم کرده. این است که اینکه امروز میگن گفتارنی، کردارنی، پندارنی این همش وحو بوده است نیک نبوده است و یعنی چیزی که اصیل است از گوهر و چهره و بون خود انسان پیدا حالا ببینید در اینجا اگر ما نقطه را بسنجیم میبینیم که اصالت اصلی بودن یک اندیش یا یک حق ربطی به زمان گذشته نداره باید از بن ما باشد در پرهنگ ایران اصل هر چیزی اصل انسان در گذشته نیست بلکه در درون خود آن چیز. در بن خود انسان هست. در هر زمانی چه این زمان در گذشته باشد چه امروز باشد چه فردا باشد اون چه از بن از گوهر از چهره انسان از نهاد انسان بجوشد اصالت در و پاک ببینید این آفرینندگی در همه زمان ها پلی رفته می شود. آفرینندگی ویژه گذشته نیست. این حرف وقتی میگوییم به، اندیشه به، منیدن به که خود و هومینو این بیان آن است که این نیست که، بیان این نیست که فقط در گذشته دور اندیشه های انسان عچیل و پاک بوده است. و آنچه چه کوهنسال است و آن چه سنت و عرف گفته می شود اون چه محمد و موسی و ایسا گفتن اون چه هراکلیت و عرستو و افلاتون گفتن اثارت دارند و مقدس دستان نه ببینید این تفاوت این کاملا حرف قلطیز همیشه گفته می بازگشت به اصل بازگشت به تاریخ به مثلا حقامل فرهنگ ایران همچی چیزی را نمی خواهد. مسئله مسئله بازیابی بون یعنی طبیعت انسان بنی بونی که ازش میجوشد. بونه آفریننده. رجوع کردن به بن خود. رفرنس تو ریفر به بن خود مراجعه کردن. چی بن به عنوان سرچشمه. به عنوان مرجع. این اصل فرهنگ ایران است. این با بازگشته به سنت یا برهی از تاریخ گذشته که ما دوست داریم این فرق زیاد دارد. اینها رو ما اغلب نادیده میگیریم از این را متوجه فراموش میکنیم که ما مسئله فرهنگ ایران به این رسی بازیابی بون بوده است. از این رو بود که با بازیابی بن پیدایش تازه به تازه از بون. آفرینندگی تازه تازه از بن هست که برتری این دارد که ما بیاییم تقلید بکنیم یا خودمان را باستازی بکنیم تیگه طبق برهی از زمانهایی گذشته بشه مسئله پرهنگ ایران این است که میخواد این بون را بسیش کند ما خود ما از سر به بون ما به بون انسانی خود ما را بید. به همین علت است که این سرندیشه این همین سرندیشه به بون بازگشتن در اصلاحاک بندهش و بون یاد و داده به یادگار مانده است ولی این که مسئله بندهش این نبوده است که ما به یک بون ساختگی برگرد به یک فصت ساختگی ولی این تحریفات در تاریخ همیشه بوده است و مخصوصا این مثلا داستان هایی که در شاهنامه می آید و در همین بوندهش و روایات پهلوی و اینها می آ گزیده های دادفر هم همه اینها میاد اینها اونچورا که همه اسطوره می اینها داستان این داستانهایی بوده است که این انسان را برمیانگیخته است که به بنش بازگرد هست ولی بعدا از این داستانها در هر دوری استفاده کردن تحریف کردن تا اینی که الهیات خودشون را درست کنند تا اینی که تئوری حکومتی خودشون را درست کنند یعنی اون چیزی که از بن زاده شده بوده است. یک فترت ساختگی جای او میذاشتن وقتی با همین داستانها بر میرفتن با همین داستانها دستگاری میکردن که اون را در بیاورن و این درست مسئله ما این نیست که اینها را به عنوان مجبولات دور بریزیم تمام این مجبولات تحریف اون فرم اطلیست و این چیزها ترهنگ خیلی سخت و است. این تمام این تغییرات و تغییر شکل ها، همه ست است. یک خورده که ما ب این ها رو میتوانیم دور برزیم و درست به همون بن بنداده بونداده و بنیاد برسیم که و اینها چیست اینها که تراوش گوهر ملت در هداره هاست اونچه از بند از گوهر از نهاد از فطرت میزاید و می و می جوشد پاک است یعنی مقدس است ولی بزودی در اثر کاربرد برای اقراض مختلف برای منافع شخصی مختلف برای منافع گروهی مختلف طبقاتی مختلف این اندیشه ها آلوده و مخلوط می شود و اصالتش رو از دست می ده. اگر در آغاز ناآگاه بودنه از باند در نا آخ، نا، ما می خود آگاه این البته آگاه و ناخود خود آگاه ما خیلی چیزها را خود آگاه نیستیم ولی نا آگاه در ما هست این را بهتر است بگوییم نا آگاه بود یا آگاه بود خود از این آگاه نیست ولی ما آگاه از اون داریم این آگاهی در ما هست از خود آگاه بودن یک چیزی است ما از خود آگاهیم این, این اندیش ها نا خود آگاه بودانه از بون انسان میدوشد و پاک است ولی با تنفیز این اقراض و منافع از اون حق بنیادی و اصیل چی ساخته می شود؟ قوانین جعلی ساخته می شود که همه اون حق بنیادی را تحریف می کند این را در شاهنامه با این چنگ باجونه زدن که همون و تدویر خوده باشد شروع می شود که خاص ها و منافع و اقراض خود را نهادی نمی سازند، منیادی می سازند. چرا؟ این وقتی که به، یعنی جای نهادی، جای گوهری، جای فطری بگذارن به اینسان کار جعل کردن جانشین فطرت و نهاد و گوهر میشه. این فطرت ساختگی و جعلی جانشین فطرت و طبیعت و گوهر رو بن میگردد. این روند بنیاد سازی، فطری سازی، نهادین سازی، اصلی سازی همیشه در تاریخ در کار بوده است و الان هم در کار است شما هر حقی رو که بگید فردا از این را می رو می بینید در ایران هر چیزی که گفته میشه، فریاد کپیهش اونجا هست. رفراندوم میگه فردا کپیهش اونجا هست. مشروطه میگه کپیهش اون. چه فر مشروطه فردا هست. جمهوری می چه فر جمهوری اونجا هست. حق میگید چه فر حق اونجا هست. این است؟ ایناست که مسئله ما مبارزه همیشه با گش این اون است. ما وقتی که بیدار هستیم این جلوه این جاهلیات رو میگیریم. گوه نمی... فریب نمیخوریم این با, این فریب، با این واجون سازی ها ما را بیان فترت ساختگی گوهر ساختگی حق ساختگی و حق طبیعی تشخیص میده به اصلا س... فراموش نشه و اصلا واژه‌ی اندیشیدن واژه‌ی به بخش دشمنی دوج منیک این خودش یکی از است درست همین است این دوج, دوج معانی مختلف دارد یکی خشم است یکیش هم این بارونه کردن و گول زدن و مقبر دیدن است. دوش منی یعنی دشمن کسیست که می اندیشد منیدن منیدن منی که چگونه دیگری را گول بزند و با مک رو خدعه بیادارد. حق فطری او را حق نهادی او را حق گوهری او را به نام حق فطری از او سرکنه. مسئله حقوق بشر نیست که توی یک منشوری بنویسند. نه مسئله ایناست که ما باید بیدار باشیم که حقوق حقوق بشر جعلی یعنی نخوان یه حقوق، پتر از ما سرچشمه بودن حق را بگیرن یک چیز دیگری به عنوان فرمولبندی شده جای اون به ما بدن ما دیگر سرچشمه نیستیم این منشور سرچشمه این این کار کاری که اسلام در تئوری فطرتش کرده است. در تئوری فترت اسلام از همین فطرت های زاختی اسلام های راستی، کارشان فقط همین آشغت سازی از خانه است. هر اندیشه پاکی را آلوده می پرن. و می گندانن. و متعفن آلوده آروده این تختیش ببینید کار تمام این آقایان از شریعتی گرفته، بازرگان گرفته، سروش گرفته، بنیل ساعت گرفته. همش گنداندن بهترین اصطلاحات به چیز آدیس باید بکنن اونها میخواهند این فترت ساختگی خودشون را بفروشن میخوان در جامعه به عنوان فترت جا بیاندازن این کاریست که همون در اول شاهنامه ببینید احریمن می کند یعنی چی؟ یعنی این همیشه در کار است تاریخ ما تاریخ جعلی سازی فترت است سازی حق هست. این یک کار دائمی است پس بون و گوهر و نهاد انسان غیر از آن چیزی است که در جامعه به انقان عرف و عادت و رسوم و قوانین موجود هست حالا ما دیدیم که بحث از سرچشمه بودن انسان است که حق از او میزاید. این است که این مسئله بون گوهر نهاد انسان متناظر با این مفهوم حق و این اندیشه ای است که از گوهر خود انسان می اینها این غیر از اون چیزی است که در جامعه به عنوان عرف و عادت و رسوم و قوانین مشهورند ما خیلی ساده گفته بشود که مسائل امروز هم طرح بشود ما حکومت بر پایه حق انسانی می خواهید. یعنی چی حکومت بر پایه قوانینی که از حقوقی که از درون ما میزاید میخواهیم. این فرق دارد با حکومت عرفی. پرهنگ ایران حکومت عرفی نمیخواد حکومت بنیادی بنی، حکومت گوهری میخواه. که از گوهر انسان بترابند. امروز این واجه عرفی را به عنوان جامعه سکولار به کار میبرند. ولی این غلط است عرف و عادت، و رسوم و قوانین و قواعد حاکم بر اجتماع که الان حاکم چون, اند... چون از گذشته های دور به ما رسیدن اینها این همانی با بون و گوهر و پترت و طبیعت انتا ندارن هر چیزی ای دلیل نمی شود که از بون ترابیده است دیدیم این پتری سازی و گوهری سازی و اینها جعل پترت، این جعل نهاد این همیشه رسم بوده است چون که همیشه کردند و همیشه خواهند کرد تشخیص و تمایز این دوتا از هم دیگر کار فوق و مهمیه این،, این کار را در یونان سوفستاییان انجام دادن سوفیستن و در فرهنگ ایران پیش از سوفستاییان کسی کرده است که در شاهنامه به نام سام مشهور است سام پدر زال باشد که پدر زار باشد و ما متاسفانه این داستان را به عنوان افسانه میگیریم و زود از او رد میشویم در شاهنامه در واقع این سام است که عرف و عادت را رسوم را قوانین حاکم را بر اجتماع را میشکند و بدون پشت میکنه این یک کار قهرمانی بزرگی است که در فرهنگ ایران شده است و ما بایستی او را ارج دهیم. این سرکشی و تقیان سام رویا روی عرف و رسوم و دین حاکم و عادت حاکم بر اجتماع بر چه, ال... بر چه پایه بوده از بر پایه بونه ناپیدای انسان که حق انسان که حقوق بشر از آن میتراود این ببینید اینجاست که حقوق بشر شروع می شود. از سرپیچی در مقابل عرف در مقابل قوانین دینی یا غیر دینی که حاکم بر اجتماع آدات اجتماع این وقتی کسی بونش را گوهرش را معیار قرار می متوجه این تنش و کشمکش میانه این بون و گوهرش با عرف می شود این است که ما حکومت عرفی نمیخوایم. یک عرف یک قبانین موجود در بین خربه این فرق دارد با حکومتی بر پاییه بون و گوهر و نهاد انسان این همیشه در کشمکشان این اون چیزی که در جامعه به عنوان قرف و رسوم و دین و عادت اجتماعی، هست اینها تازه تازه از این حق موجود در انسان سنجیده می شود و تغییر داده می شود ما حکومت می خواهیم که برپایگی این تغییر بنابا شود یعنی بون انسان همیشه زنده زنده بتواند عرف و عادت و اینها را تغییر بدهد حق انسان یا حقوق بشر استوار بر این سرندیشه است که خود انسان بون و گوهر و نهاد خود انسان سرچشمه حقوق و قوانین و نظام سیاسی و اقتصادی انسان دارای خرد سامانده هست سا خرد سامانده یعنی چی؟ سامان دادن یعنی حکومت گذاردن تأسیس حکومت سامان به حکومت هم میگوه سامان نرض میدهد ترچید میدهد انسان خردش خرد گوهریش خرد, گوهری خرد بهمنی است، خرد سامانده خرد قانون میگذارد خردیست حکومت نظام معین میکنه این همیشه میعافرین هست سامانده هست سام و, با سام و سامانده. سامان اساساً واجه است که در مختان و قدبه نوشته از نی در حقامنشی ها و پهل در زبان پهلوی نیدان یعنی رهبری کردن این واژه نی که نواختن نی باشد با رهبری کردن همیشه تناظر داشت این است که برای همین خاطر این سام را در اساس کار قرار ده. اصل سامان دادن حالا این سام در آغاز در داستانی که در چهنامه میآید آید به ناچار و به اکراه تن به عرف می دهد تن به عادت و رسوم می دهد. یعنی مجبور می تسلیم بشه. ولی کم کم ندای وجدانش او رو بر می ایندهد وجدان را ایرانی ها هم دین می بفت. دین چی بود؟ دین بینش و زایشی از خودش. کم کم ندای وجدانش گلندتر و برنگتر می شود و او را به سرپیچی از عرف و عادت و رسمی انگیزد اولش این دلیلی را ندارد اول تسلیم می شود این بانگویجان است که ناگان در او بیدار می شود و او در می آبد. چیچی رو در مییابد که عرف و عادت و قوانین حاکم بر اجتماع زاییده از بن انسان از گوهر انسان از پترت انسان نیستن این دین حاکم بر اجتماع زاییده از پترت انسان نیست این چوگیان در مقابل دین است، در مقابل یک خدای گذشته است و اون با این ندای وجدانش دنبال پرزند دورافکنده خود میبود. میگوید میگه ارف قلط کن. دین قلط من دنبال این مهرم، من پسرم رو دوست داشتم و او به این دین من رو مجبور کرد، این ارف من رو مجبور کرد که این کار رو بکنم. در میابد که این کار غلطی بوده است وجدان من من را راحت نمی کسرم همون درمیابد که همون کودک دور زیر فشار اجتماع و عرف و قوانینش اکنون فرزند خدایی شده است که بارونه اون قوانین و اون عرف زندگی انسان را مقدس کند. انسان یک فرد تاقیب عرف یک فرد تاقیب رسوم و قانون و حاکم برش بر ترس از سرزندش اجتماع بر ترس از بی شدن و ترس از گناه و بر ترس از تبعید و ترس شدن از اجتماع بلاخره چیره می شود. و چون که از این ترس راهایات از عادت و عرف و قوانین و دین حاکم سر می پید. این فوق العاده مهم است. ما این داستان رو بیارزش می گیریم. این از بزرگترین پیام آزادی در فرهنگ ماست. همین فردی که ما تاریخ زندگی او را نمی شناسیم. کسی است که با همین چقیانش انقلابی بزرگ در فرهنگ سیاسی و حقوقی ایران پدید آباد. سرچشمه حقوق بشر شده. در اینجا فرد. یک فرد، فرد فرد در اصمه حق به سرپیچی و سرکیچی از عرف و عادت و دین و قانون و حاکم بر خود را واقعیت میباشه. سامدر میابد که همه این رسوم و عرف و دین و قانون و حاکم و عز شده است جعلیست. ساختگیست. با وجود اینکه میگوید چون است چونکه گوز... از گذشته آمد هزارها مانده است دمز بقا میزنم میگوید نه به که اینکه هزارها در تاریخ بوده از دلیل نیست که گوهریاست این نیست که, که فترس در می آ... و او که در میآبد که گوهر یا فطرت و بون انسان چیز دیگری است در این مهر او به جان است که فطرت انسان است. نه این, این حرفها و این گوهر و نهاد و بن یا فطرت انسان است که مرجع نهاییس این کشف بسیار مهمی بوده است بن و یا فترت و گوهر انسان بر ضد قوانین موجود بر ضد عرف بر ضد رسوم بر ضد دین حاکم است و باید باز, باز از این بن از این گوهر از این نهاد خود انسان شد تسلیم نشد تن نداد و به نفی عرف به نفی رسوم به نفی قوانین حاکم قیام کرد این فوق العاده مهم است پیام سام این بود که ببینید ما به شاهنامه باید چه ارزشی بدهیم که این چنین داستانی رو برای مانجات داده است این بزرگترین از بزرگترین بخش های فرهنگ ایران است پیام سام این بود که ما از بون از گوهر خود از گوهر انسانی خود باید شروع کنیم و بگذاریم که بینش قانون و حق از خود انسان مستقیما بجوشن چون که از این بینش هست که ما قدس زندگی و جان را باز میابید و با چنین دریافت بون و گوهر انسانی خود تاریخ را، عرف را، رسوم را، دین را، قانون واقعی را تغییر می‌دهند. اینها هیچ کدام فطری نیستند بلکه فطری و بنیادی و گوهری ساخته شدن این دو چیز را باید از هم تمیز داد اونچه که زیاد مانده است، بردهداری زیاد مانده بود اما دلیل این نبود که بردهداری گوهره است که انسان برده پیدای شد. انسان صغیر بوده، انسان قیم لازم داشت، انسان حجت لازم داشت، انسان رهبر لازم داشت، همه سنت و عرف و قوانین و همه فطرت ساختگی و بون ساختگی و گوهر جعلی هست، همه اینها ها به امروزی ها نهادین ساخته شدن و هیچ کدام نهادین نیست. سام در آغاز با دیدن فرزنده است. که مویش سپید با موی سپید داده شد. از, از سرزنشو ننگین شدن در اجتماع میترسد. در روزگار گذشته ننگین شدن در اجتماع ننگ فوق العاد خطرناک. کسی که در اجتماع ننگین میشد عملا در زندگی همه حقوق خودش را از دست میداد. به همین و همین علت مجازات و کیفرها روی ننگین ساختن شده مثلا در اسلام بریدن بورید. دست یا پا یا اینها همه برای ننگین ساختن است یک کسی که دستش بریده شده است پایش بریده شده هست، این در جامعه به عنوان مجرم و جانی ننگین ساختم عملا تمام ارزش و اعتبار خودش را از دست میدهد به قول از این روز که با حقوق بشر مخ متداد است چون که کیفر دادن و مجازات دادن در بر اساس حقوق و بشر بر اساس محکومی که بحث کرد کسی حق ندارد کسی را ننگین بساد مجرم در درونش این گوهر سی مرقی رو خدایی رو دارد این است که کسی مجازات نباید همیشه جان او را بیا دارد مجازات باید محدود باشد این است که می بینیم ننگین شدن مخ این جور کیفر دادن و مجازات دادن بر برپایه ننگین شدن و کلی برزد حق گوهریه است که تمام مجازات های اسلامی مجازات های کیفر سازی سام هم از این سرزنش مردم و ننگین ساخته شدن در اجتماع با داشتن چنین بچه می ترزد. چون می داند که مردم داشتن چنین فرزندی را نتیجه گناهی می که او در برابر خدای اجتماع کرده می او چون گناهی کرده خدا بشن که بچه داد حالا این دو راه دارد جامعه برای او دو گونه مجازات می قائل بشن یا اینی که باید رو دور بیاندازد یعنی عملان بکشد تن بکشتن او بده. یا اینی که میهنش رو بگذارد و با کودک به تبعید و این هر دوتا که سرزنش رو ننگ اجتماعی. و چه تبیید در آن روزگار برترین مجازات ها بود یعنی کسی که از اجتماع می میشد عملا کلیه حقوق و حمایت خود را از دست میداد این اجتماع بود که از حقوق او دفاع میکرد انسان بر پایه خودش حق نداشت. اجتماع از او دفاع میکنه این است که در شاهنامه این بخش رو باید با دقت خوان بترسید سام به ترسید سخت از په سرزنش شد از راه دانش به دیگر منش ترس از سرزنش و ننگ دانشش را در, در هم آشفته کرد سوی آسمان سر برآورد راست و زان کرده خیش زنهار البته نمیدانست چه گناهی ولی گفت که از من از تو زنهار میخوام که ای برتر از کجی و کاستی بهی زن فضایت که تو خواستی اگر من گناهی گران کرده نمیداند که اگر من گناهی گران کردم و اگر دین من آوردم به پوزش مگر کردگار جهان به من بر ببخش آیده ببخش اندر نهان به من بر به من بر ببخش آید اندر میگوید که اگر من گناهی کردم خوب است که خدا گناه شخصی و فرده مرا در نهان به من ببخش باز اینجا نکته خیلی حساسی اینجا سام اعتراض به این شیبهه انتقال کیفر گناه از او به داشت. یعنی این رو ظالمانه می که به جای گناهی که من کردم فرزند من یا نوه من باید کیفر ببینم این البته این اندیشه کیفر در چند نسل یک چیز معمولی در تورات و این کتاب. که نصرن در نصر یهوه گناهان اینا رو نمی و کیفر می ده. نباهاش رو نتیجه هایش رو همه رو برای که پدرشان, پدرشان پدر بزرگشان کرده از کهی این را سام در اینجا نادلانه می و چنین چیزی را نمی و ببینید چه اندیشه بزرگی را در چه اندیشه های بزرگی در این داستان هست که ما در خواندن نادیده میگیریم. سام در اینجا این تصویر از خدا را که انتقام کشد و اینقدر انتقام کینه انت... توز هست که صده ها انتقام میکرد. مثلا همین ایده آمده از در, در تشیع مسئله الله که معاویه و یزید و اینها کاری را که با خوزین کردن اینها از تمام دنیا از همه حکومت ها که میاهندسر کار میخوان انتقام بکرد. این دیوانه، این کینه توزی، این رسانتیمان، این یک نوع بیماری روانیست که در, در این عدیان هست و او ضد این اعتراض میکنند. میگهد من شرم از این چنون گراه میکنم که ولی تو به من به خود من ببخش بپیچد همی تیر جانم ز شرم بجوشد همی در تنم خون گرم ولی از این ننگ اجتماعی که مردم او را متهم میکنند که تو در مقابل خدا گناه کردی و تو این پسر را برای این خاطر داری و این پسر همیشه در اجتماع نشان ننگ پدرش هست بخندند بر من مهان جهان از این بچه در آشکار و نهان از این ننگ بگذارم ایران زمین نخانم بر این بوم و بر آفرین بگفتین به خشم، و به تابید روی همین کرد با بخت خود گفتگوی اینجا در تنش و کشمکش در درونش هست دور انداختن بچه نام و ننگ تبعید همه اینها از طرف دیگر اینها مسئله نبود اگر چنان که وجدانش او را بر او دستور میدهد که فرزندش را دور بیفت کرد چون که خودش عذاب داشته است که چنین کاری بکند ولی وجدان یا همون بینش زایشی او که ایرانی دین میگوید، او را رها می کند و او را عذاب می دهد و همیشه او را بیاده این فرزند بیگناهش و پسند به دور انداختنش میاندهد. بزرگترین جرم ها در فرهنگ ایران پسندیدن درم هست. پسندیدن زورگویی، پسندیدن ناعدالتی، پسندیدن ناعدالتی، پسندیدن آزارده آدارد شدن دیرگان، عین خود همون عمله. یعنی انسان، ایرانی موظف است نگذارد که این کاری نباید آرام بنشین نباید نادیده بگیرد در آن روزگاران کودکان دورکنده را به نیایشگاه های زن خدا سیمر که در فراز کوهابود بود می‌بردند و در این نیایشگاه ها، این کودکان به نام فرزندان سیمر پرورده میشود این کودکان را کودکان نسان یا سی، س... کودکان سیمر مینامیدن. سند، این باجه سند، سنداره، سندره، نام است که به این کودکان میداد. این کودکانی را که از سر راه بر چون هر کودکی، فرزند مستقیم خدا یا سیمر یا آل شما، چون هر چنین کودک های دورفگنده که زیر این ننگینسازی ها و اینها باید دور انداختی باشید. از دید سیمور خداییست که سیمر نام داشت، حق به زیستن و پرستاری کردن، و آموزش و داشتن داشتن از دید این خدا اونها اون خدایان دور میانداختن ولی این خدا نمیفرد از این رو نیایشگاه های سیمر خانه یتیمان خانه پیرمردان بود خانه کسانی بود که مترودان بود از جامعه مطرود شده بودم اینها فرزندان سیمر یا خدا ببین حالا یک موقع بحث هم کرد اصلا ایده بست نشینی از اینجا آمد هرکس در خا... نیایشگاه سیمر وارد می شود. کسی حق آزردن او را نداشت که این البته بعدش این چون که این امامداده ها و اینها را معمولا در همین نیایشگاه های سی ساختن این ایده به با جا برای خاطر اون امام و امام داده نبود بلکه این ایده سیمرقی بود که هر کس در این محوطه باشد کسی حق آزردن او را ندارد حتی بزرگترین ق حق جان حق زیستن برتر از تمام قوانین برتر از تمام جرم هیچ جرمی سبب نمی‌شود که بتواند انسان کسی را بکشد این ایده ایرانی است نه اینکه حکم لغو اعدام یا به عنوان هیچ جرمی حتی دهها قرن عمرشان که ملیون ها افراد رو این چون که بر دلب اندیشه قداسهت جان است حالا این, شا... این ترکیب سن که سن اند باشد سن و اند باشد اند یعنی تخن سن سان آن یعنی تخم سیمور سان البته این خیلی جالب است که دانسته بچات که این یعنی جان این, جان این هر کودکی که سان سان ده است یعنی توخمسیمون مقدس هست این است که این ایده در اروپا اومد کلمه سنت انگلیسی و سنت آرمانی از همین واژه آمده است یعنی مقدس و ببین این ما این ایده های ایران از کجا تا کجا آمده این است که خیلی از نام ها که من الان وقت اون را ندارم بشمورم از همین تلمه از همین ریش آمده است مثل واژه صندوق سند، باد یا روتانه سند شام دلاخره در خوابی میبیند که قرامی پدید آمدی خوب روی این حالا این قضیه این است که او نمیتواند وجدانش او این نمیتواند بپذیرد که پسرش را به دست کشتن داده است به دست نابود این است که مرتبا خواب میبین در خوابی میبیند که قلامی پدید آمدی خوب روی سپاهی گران از پس پشت او یکی پیش سام آمدی زن دو مرد زبان برگشادی به گفتار سر که ای مرد بیباک ناپاک رای زدیده بشستی تو شرم خدا پسر گر به نزدی که تو بودخار کنون هست پرورده کردگار تو دور انداختی ولی امروز پرورده کردگاه خدا مان و داید. یعنی فرزند خدا شد کدو مهربان تر بدو نیست تو را خود به مهران درون اون تو کسی هستی که مهر به جان ندار مهر به جان قداست جان ایجاب مهر به جان مهر به زندگی را مید و این چیز این خواب ها وجدان او را آرام نمیگذارد و او را از این عملی که از ترس عرف و رسم و دین حاکم بر اجتماع کرده است آرام نمیگذارد بترسید از آن خواب که از روزگار نباید که بیند بد ترسید چیزی دیگری حالا دارد می ترسد. می ترسد که روزگار او را کیفر و پاداشد برای این کار که غلطی که کرده است این خطایی که گناهی زوردن جان را کرده این حالا در خطر این هست که باز این مجازات را در درون خودش ببیند از این ناآرامی درونی که او را رهانه می کند به جستجو می تا فرزند خود را به و برگرد. در او تنش و کشم شیاد ایجاد می شد چجور میان حقی که در دربون یا گوهر یا پترت او هست که هر جانی حق بزیستند داره. برای داشت. و دین و قانون و رسم و عرف موجود در اجتماع که اونها میگوین چنین جانی رو باید دورند. بلاخره این تنش و کش به حدی میکشد که از دورند آکتن فرزند خود به رقم عیمی که داشته از پشیمان میشد و ترس از ناموننگ و, ننگ و سرسره سرزنش اجتماعی از او فرو میریزد و میخواهد همون, همون فرزند رو بیابد و باز به جامعه بازگردانم میرود دنبال این فرزند که پیدا کند و او را اثر به جامعه برگرداند جامعه ای که او را طرد کرده جامعه ای که او رو حکم قتل او را او میداند که بازگردان دن چنین فرزندی به اجتماع کار خطرناکی است ولی این ندای به جان و فطرتش و و گوهرش به او چنین حقی و چنین دلیری میداند فرد حق دارد وقتی قانونی و رسو و دینی بر ضد حقی هست. که در فطرت و بون انسان هست برخیزد و بکوشد اون قانون و رسم و عرف را نفع و کند و تغییر بدهد و با آنها پیکار کند